خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم شط و تامات به بازار خرافات بریم سوی رندان قلندر به رهاورد سفر دلق بستامی و سجاده تامات بریم تا همه خلوتیان جام سبوهی گیرند چنگ صبحی به در پین مناجات بریم با توان عهد که در وادی ایمن بستیم همچون موسا عره نیگوی به میغات برین کوس ناموس تو بر کنگره ارز زنیم علم عشق تو بر بام سماوات بریم خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا همه بر فرق سر از بحر مباهات بریم. ورنهد در ره ما خار ملامت زاهد از بلستانش به زندان مکافات بریم شرم منباز پشمینه آلوده خیش گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم قدر وقت در نشناس دل و کاری نکند بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم فتنه می بارد از این سقف مقرنست برخیز تا به میخانه فنا از همه آفات بریم در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم حافظ او به خود بر در هر سفله مرید حاجتان به که بر قاضی حاجات برید.